فصل ششم درمان پزشکی یادزدودگی ها طب کلاسیک و طب هوموپاتیک روشهای درمانی موثری را بر علیه یادزدودگی های کوچک و متوسط که به صورت کاملا آشکار حالت روحی شخص را دچار اختلال نمی سازن و یا به بیان دیگر علیه وضعیتی که عوام به آن کم حافظگی میگوین به کار می‌برند برخی از روشها که در قسمت اول مطرح میسازیم به طور معمول قابل استفاده نبوده، فقط در بیمارستان انجام شده و هدف بهبود مجموعه اعمال بدن یا مبارزه علیه پیریست و در بهبود حافظه نیز به نوعی موثرند. هرچند آنها را به طور کامل در کتاب راهنمای درمان طبیعی توضیح داده ایم. در عوض برخی دیگر در اختیار همگان قرار دارد. در رابطه با درمان های کلاسیک بهتر است نظر یک پزشک با تجربه که داروهای متناسب با موارد مختلف را تجویز می جویا شوید. بخش اول روش های درمانی که در بیمارستان به کار می همان که گفتیم این روش ها را به طور کامل در کتابی که نام بردم مورد بررسی قرار داده هم. در برخی از این روش ها، از هورمون‌های های طبیعی یا سنتزی و برخی دیگر از مواد تحریک کننده عمومی استفاده می شود. اصول این مسئله به قرار زیر است. الف بکار بردن ترشحات داخلی پزشک و فیزیولوژیست فرانسوی براون اسکوار اولین کسی بود که اندیشه وجود رابطه‌ای بین حالت قدرت جنسی و ناراحتی‌های فیزیولوژیک و روانی که در اغلب اوقات افراد مسن را مبتلا می‌سازد مطرح کرد. دستورالعمل او ساده بود. وی می گفت: من قدد جنسی و بیزههای گاو یا گوسمند را در یک هاون داروسازی با شن شسته شده میسایم. پس از آن به تدریج حدود بیست برابر وزن آن آب مقطری که دارای اسید بوریک باشد به آن افزوده و سپس آن را صاف می کنم پس از آن این پزشک ماده به دست آمده را به صورت تزریق زیر جلدی به کار می‌برد. ولی نتایجی که او به دست می‌آورد متغیر بود. تزریقات باید به وفور تکرار میشد و این چیزی بود که بیمار را دچار ناامیدی می‌ساخت. تنها کاری که این اسار انجام می‌داد این بود که جای خالی کار قده را پر می‌کرد. و این کار درمان را کسل کننده و بیهوده جلوه میداد پس از او یک فیزیولوژیست اتریشی به نام اشتاینخ به دنبال همین اندیشه پیشنهاد میکند که محلولی را برای مشکل جوانسازی فیزیولوژیکی و روانی ارائه کند او با این اندیشه که تهییه اسپرماتوزوئیدها توسط قدد بیضه‌ای بر اثر هورمون‌های مترشحه آنها انجام میشود از یک روش قطع یا بستن کانال های اسپرماتوزوئید که اسپرم را به بیرون می‌فرستاد استفاده کرد. دکتر دستوش این موضوع را به این صورت تشریح می‌کند. این کار در مجموع مانند یک عمل کلاسیک در سیاست اقتصادی است. به این معنا که صادرات را برای رفع نیازهای داخلی قطع کنیم. ولی نتایج این کار با اشکالاتی روبرو و این روش عملاً کنار گذاشته شد. دکتر ویرونوف که روسیول اصل بوده و مطالعات پزشکی خیش را در پاریس انجام داده و بعدها به عنوان رئیس بیمارستان سوئیس در پاریس منصوب شد، مانند براون اسکوار و اشتایخ تصور می‌کرد که ضعف و فقدان قدرت بیزه ها علت مهم پیری است. و به همین دلیل وی اقدام به پیونده بیزه نمود در این حال چون در اختیار داشتن یک بیزه یا تخمدان انسانی زیرا این روش را در مورد زنان نیز میتوان به کار برد کاملا استثنایی بود ورونوف از قدد میمونهای پیشرفته نظیر شامپانزه، جیبون و هامادریاس ها استفاده می کرد و در این مورد میگفت این حیوانات به خانواده زیستشناسی انسان متعلق هستند. وی مستقیما پیوندها را به بدن بیماران وارد می‌ساخت. یعنی در مرد به بیزه ها و در زنان به زیر پوست شکم. او تقریبا دو هزار عمل را به دین ترتیب انجام داد. تحریک عمومی در غالب اوقات مشاهده شد، ولی آثار این پیوندها فقط چند ماه طول کشید و هرگز از دو سال فراتر نرفت. به عبارت دیگر، اگر پیوند به صورت دوره‌ای روی یک شخص تجدید می تأثیر آن بیشتر و بیشتر کاهش می آفت. در برابر شکست نسبی این پیوندها، ولی باز هم با همان اندیشه جوانسازی فیزیولوژیک و روانی که در رابطه با بیداری فعالیت جنسی بود، جیل برسانساک می اقدامات دیگری نیز در طول 20 سال انجام شد. هدف برخی از آنها دوباره فعال کردن شریانی بود که قدرت جنسی مردانه را تغذیه میکند تا جریان خون در این منطقه تقویت شده و ترشحات درونی این عضو تحریک شود برخی دیگر از این روش ها به گرم کردن لفاف های بیزه ها میپرداختند در حال حاضر و باز بر اساس همان اصل ترشح درونی بیزه ها یعنی اینکه هورمون مردانه اثر مولد نیروی بسیار واقعی دارد هورمون مصنوعی تستوسترون به صورت پروپیونات، استات یا هپتیلات جایگزین اصاره های قده و ها یا حب‌های کوچک این هورمون جانشین پیوندها شده است پروفسور می نویسد، در مجموع این روش هورمون درمانی بدن را مجدداً فعال ساخته و گاهی اوقات بهبود قابل توجهی در کارایی بدن ایجاد می‌کند. بازگشت نیروی فیزیکی و روحی، افزایش نیروی کار و سایر توانایی‌ها، بهبود حافظه و در یک کلام بازگشت به یک تعادل بهتر عصبی روانی مشاهده می‌شود. او می‌افزاید تنها افرادی را می‌توان با این روش تحت درمان قرار داد که دچار ضعف امعایی یا اروغی جدی نباشند. علاوه بر آن، افرادی که مبتلا به ناراحتی قلبی بوده و مکانیسم‌های دفاعیشان در حال فروپاشی است و مبتلایان به فشار خون شریانی، ناراحتی‌های کلیوی یا سرطان را نیز نمی‌توان از این طریق درمان کرد. وجود سرطان پروستات یکی از ممنوعیت‌های اصلی درمان هورمونی مردانه است. و سرانجام، غیر از هورمون‌های جنسی در درمان سالخوردگان از هورمون هیپوفیزی سوماتروپ که از طریق هیپوفیز برای رشد عمومی ترشح می‌شود و هورمون تیروئیدی یا تیروکسین نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند که در اکثر موارد حالت روانی افراد سالخورده و خصوصاً حافظه ایشان را بهبود بخشیده است ولی در رابطه با مصرف این مواد بایستی بسیار محتاط بود زیرا هورمون اول رشد سرطان های گوارشی را تحریک کرده و هرمون دوم نیاز به مراقبتی دائمی در جریان درمان دارد و می مشکلات و یا اتفاقات مختلفی نظیر شدت یافتن ضربان تپش قلب، افزایش دمای بدن، تعرق، اسهال، تحریک، لرزش، لاغری سری، ناراحتی های قلبی و غیره را به وجود بیاورد. داروهای خاص در این رابطه در این قسمت موادی را که تحریک عمومی ایجاد می‌کنند خصوصا سرم بوگومولتس استیمولین های بیوژن فیلاتو و اساره های جنینی را بررسی می‌کنیم پروفسور بوگومولتس حدس میزد که بافت ملتهمه وظیفه تغذیه را که بی نهایت مهم بوده در ابعاد ای در رابطه با سایر سلول های بدن از جمله سلولهای عصبی که مرکز زندگی جسمی و روانی هستند بر عهده دارد به همین دلیل بنابر نظریه بوگوملتس باید با اسکلروز پیشرس عناصر بافت ملتهب مقابله کرد او تصور می می‌کرد با استفاده از سرمی که با تزریق عصاره تازه تهال و مغز استخوان انسان به اسب یا خرگوش به دست می آید می توان جلوی این حالت را گرفت. این سرم که با عنوان سروم انتی ریتیکولر یا سروم ASC نامگذاری شده، غالباً ضعف فیزیکی و روانی سالخوردگان را کاهش داده و حافظه را بهبود می‌بخشد. این سرم در کشورهای مختلفی مورد آزمایش قرار گرفته است و در فرانسه پروفسور بارداک از انیستیتو پاستور سروم ارتوبیوتیکی را که بر اساس تحقیقات بوگومولتس استوار از تهیه نمود. این سرم در بسیاری از موارد به شرطی که در مقادیر بی نهایت ضعیف و بر حسب حساسیت فردی نسبت به داروها و یا به عبارت دیگر بر حسب واکنشهای فرد تهیه شود، نتایج مثبتی خواهد داشت. سوای این مسئله مصرف این سرم برای برخی از بیماری ها شدیداً ممنوع است. پروفسور فیلاتوف هموطن بوگومولتس وینیز در شوروی به دنیا آمده است. در جریان تحقیقات خود در درمان بافتها دریافته بود که هر بافت زنده گیاهی، حیوانی یا انسانی که در یک حالت ادامه زندگی نگه داشته شده، ولی در شرایط غیرعادی زندگی قرار گیرد، با تولید عناصر و استیمولین‌های بیوژن که دارد، ارگانیسم زنده می‌شود و باعث تحریک واکنش‌های حیاتی می‌گردد و از خود دفاع می‌کند. برای به دست آوردن این استیمولین ها، قطعاتی را که به صورت کش نگهداری می شوند، تحت تأثیر شرایط فیزیکی نسبتاً ناگهانی، نظیر سرد یا گرم شدن به صورت یک باره، تشهرشعات و یا جابجا جا شدن به خارج از محیط طبیعی قرار می دهند. سپس آنها را در بدن بیمار قرار داده یا اینکه به صورت تزریق یا شیاف برای وی تجویز می کنند. در حال حاضر برای این کار از بافت‌های آمنیوتیک یا جفت استفاده می‌شود. متأسفانه بهبودهای به دست آمده سر حال آمدن به صورت واضحه قوه محرکه غیر معمول و حافظه قویتر معمولا سیر نزولی دارند گویی که بدن خود را علیه تأثیر استیمولین بیوژن واکسینه می‌کند. بنابر این، معالجات باید با فواصل طولانی انجام شود. روش دکتر نیهانس هانس سوئیسی با روش های قبلی کاملا متفاوت است. این روش شامل تزریق اصاره جنینی که از جنین یک گوسفند یا گاو به دست آمده به بیمار یا فرد سالخورده است. اکثر افرادی که بدین ترتیب معالجه شده اند شهادت می‌دهند. معالجه با این روش نیروی حیاتی، حافظه و شادابی از دست رفته مجددا برگشته است. نیهانس نیز تایید میکند که در هزار مورد تحت معالجه تقریبا هرگز با شکستی مواجه نشده است اما وی اعتراف میکند که نمیتواند مکانیسم تأثیر درمانی این روش را دقیقا توضیح دهد پزشکان دیگری نیز با استفاده از این روش درمانهای مشابهی را انجام داده اند مثلا پروفسور لئونبینه و همکارانش فرانسوا کوتنو و خانم ژران چرنیا دارویی را بر اساس اصاره های جنین گاف تهیه کردند این اصاره ها که در حرارت منفی 8 درجه سانتیگراد به صورت پودر در است به صورت تزریقات زیر جلدی مصرف می شود بدین ترتیب نتایج غیرقابل قابل انکاری چه از نظر فیزیولوژیک یا روانی به دست آمده است جیم روش های دیگر در میان آخرین روش های بازگرداندن نیروی حیاتی، روش دکتر آنا اصلان رومانیایی توجه دنیای علم را به خود جلب کرد. این روش اساساً شامل تزریق یک ماده یعنی h که یک محلول اسید پروکائین بوده و مشتقی از نروکاین که به عنوان بیهوش کننده به کار می رود می باشد. این روش درمانی نیروی جسمانی را افزایش داده، حافظه را ترمیم کرده، و همچنین سایر توانایی های فکری نیز تقویت می کند. تحقیقات نشان داده اند که این روش تأثیری از نوع ویتامینی بر جای میگذارد و سیستم اعصاب را دوباره جوان می کند. آنا اصلان در این مورد می گوید همه چیز به گونه ای اتفاق می افتد که گویی پروکائین زندگی را به شکل نباتی آن در سطح سلول تحریک کرده و بدین ترتیب نیروی حیاتی را فعالتر می سازد. البته این نوع روش معالجه در شکل کلی تنها به تزریق اچسه اس اکتفا نمی‌شود. مسئولین انستیتوی پارهون رژیم‌های غذایی مناسبی را برای هر مورد خاص دنبال کرده و تقریبا همه افراد به یک فعالیت جسمی و فکری باز می‌گردند. و سرانجام اکسیژن درمانی نیز نتایج خوبی در معالجه یادزدودگی ها از خود نشان داده که در فصل هشتم مجددا در مورد آن صحبت خواهیم کرد. بخش دوم داروهای پزشکی کلاسیک از میان داروهای طب کلاسیک که امکان مبارزه با یادزدودگی را به وجود می آورد می توان از دارویی نام برد که پروفسور لیون آن را به صورت مناسبی به شکل فرمول زیر درآورده است. متلفوسفات کلسیوم 15صد میگیرم، گلوکنات کلسیوم 15صد میگیرم، متونین 15صد می گیرم. داروی مزبور به صورت قرص به مقدار 2-4 یا 6 قرص در روز که اکثر اوقات 2 قرص در زمان صرف صبحانه مورد استفاده قرار می گیرد. یود نیز می تواند به صورت آلبومین یوددار 15 درصد به مقدار 500 صدم گرم در غذای ظهر و شب یعنی 15 سانتی گرم یود در روز مصرف شود در رابطه با ویتامین ها باید متذکر شویم که اگر علت اصلی از دست دادن حافظه فقر ویتامینی نباشد حداقل این را می توان گفت که ذخیره ویتامینی در سلول های کبدی افراد مسن که معمولاً کبد ایشان به خوبی کار نمی کند، کمتر از افراد معمولی است. به عبارت دیگر ایشان گاهی اوقات به دلیل ناراحتی‌های معده، روده، کبد، قلب و یا سایر ناراحتی‌ها تحت رژیم‌های سختی قرار دارند که این رژیم‌ها معمولاً کمبودهای ویتامینی نامناسبی را در رابطه با کارایی مغز به وجود میآورند. بررسی ترکیبات پلاسمای افراد سالخورده نشان داده که به عنوان مثال مقدار ویتامین‌های B1، B2، E و C به نسبت پلاسمای افراد جوان دچار کاهش شده است. همچنین علاوه بر یک رژیم مناسب، تجویز این ویتامین‌ها و حتی مجموعه ویتامین‌ها به صورت دارو می‌تواند در افراد مسن مفید واقع شود. البته بدون آنکه تظاهر کنیم که این کار به تنهایی مشکل پیری و یاد زدودگی در افراد سالخورده را حل کرده است ژله شاهانه زنبور اصل که توسط زنبورها برای تغذیه حشره نوزاد ملکه تهیه می شود، خواص خود را مدیون غنای آن از ویتامین B1، B2، H و همچنین هورمون‌های رشد باشد. مصرف این ماده در تپ سالخوردگان به عنوان منبعی از ویتامین‌ها و هورمون‌ها از همین امر ناشی می‌شود. سوای نیرویی که این ماده در شخص ایجاد می‌کند مشاهده شده هنگامی که این ماده با گرده گل همراه باشد، حافظه افراد مسن را بهبود می‌بخشد. و سرانجام با ایجاد تناوبی همراه با داروهای معدنی، مثلا همان داروی دکتر لئونبینه، و ویتامینی استفاده از موادی که ایجاد انرژی می نظیر اسیدهای ریبو نوکلئیک و دزوکسی نوکلئیک یا آدنوزین تریفوسفات نیز مؤثر واقع می شود. دکتر لیون بینه در این زمینه می نویسد تجویز طولانی آنها از طریق معالجات منقطع باعث بهبود حالت عمومی، تقویت و بهبود حافظه در افراد سالخورده خورده می شود. بخش سوم، داروهای هوموپاتیک در این قسمت بر حسب ترتیب الفبا گروهی از داروهای هوموپاتیک را با علائم اصلی بالینی نام میبریم. بر حسب نوع ناراحتیها بیمار دارویی را که مناسبتر است انتخاب میکند. در تمام موارد بایستی به ترتیب زیل عمل کرد. یک از اولین روز درمان تا پانزده روز پس از آن یک دوز که به میزان سی درجه رقیق شده است در موقع شب یا وقت خواب مصرف شود. دو، به تناوب هر روز صبح، ظهر و شب دو گرانول از 65 درجه رقیق شده مصرف شود. سه، این روش را تا هنگامی که ناراحتی ها کاهش یافته یا ناپدید شوند ادامه دهید. آگاریکوس موسکاریوس نوعی ناراحتی عصبی که پس از مطالعات طولانی و خستگی مغز به سرعت ایجاد می شود زیرا توانایی کارهای فکری در این حالت تقریبا صفر است مثلا در این حالت یک کودک که در تحصیلات خود دچار اشکال شده هیچ چیز را به خاطر نمی سپارد و هوش وی بسیار کند رشد می کند حرکات دست شخص نامنظم بوده و را رها می کند با چرخاندن سریع سر دوچار سرگیجه می شود. آناکاردیوم شرقی از دست دادن ناگهانی حافظه پس از یک فعالیت شدید عصبی یا از دست دادن حافظه در افراد سال خورده. زعف عصبی، نداشتن قدرت تصمیم گیری، تکانهای متضاد، گاهی اوقات توهمات حواسی و بهبود حالت روحی در طول صرف غذا. آوینا ساتیوا خستگی عصبی همراه با اشکال در اندیشیدن، به خاطر آوردن و ثابت کردن توجه، کمبود نیروی عمومی همراه با بیخوابی، گرایش به غمگین بودن و مالیخولیا. باریتا کربونیکا از دست دادن حافظه در کودکان، فراموشی دستورات و تنبیهات و اشکال در توجه که آموزش را در کودکان مشکل می سازد. در بزرگسالان فراموش کردن نقشه محل سکونت، در سالخوردگان فراموش کردن اصامی و برخی کلمات مورد استعمال، ناراحتی‌های فکری، درک مشکل و اختلال روحی. کالکار آفوسفوریکا ضعف اعصاب، کار روحی سخت، سردرد، حافظه ضعیف، شخص با کوچکترین واکنشی می‌ترسد، احساس درک اخبار بد و افسردگی لحظه‌ای پس از یک ناراحتی یا اندوه جلسیمیوم تمایل به تنهایی و در آرامش به سر بردن تا شخص وادار نشود فکری را اظهار کند. تأثیر بد یک حیجان ناگهانی، یک ترس یا یک خبر بد و در این رابطه تظاهر واکنش نظیر لرزیدن، اسهال و بیخوابی سردرت همراه با احساس سنگینی، دردی که در منطقه پشتی سر آغاز و در منطقه پیشانی تثبیت می شود، میگرنی که به علت ناراحتی‌های بینایی همراه با افسردگی ایجاد شده و پس از دفع فراوان ادرار که همواره به دنبال آن انجام می‌شود بهبود می‌یابد، ضربان کند، احساس اینکه قلب از تپش باز خواهد ایستاد و ضعف بیش از حد دست‌ها و پاها همراه با ناهماهنگی در حرکات. کالیفوسفوریکوم. <تصفح> افسردگی عصبی شدید پس از آنکه کار بیش از حد فکری انجام شده است. نگرانی دائم همراه با ترسی بیدلیل، ترس از مردن، بیماری و جمعیت، نگرانی های بیدلیل، تحریک پذیری و حیجان پذیری، بیخوابی بر اثر کوچکترین تحریک عصبی، ترس و وحشت شبانه و سرگیجه در بعد از ظهرها و شب همراه با گرایش افتادن به جلو. لیکوپودیوم از دست دادن حافظه، شخص در مکالمات رایج کلمات صحیح را اختلال در کلمات و ها، فراموش کردن حروف و کلمات در نوشتن. لیکوپودیوم خصوصاً در رابطه با افرادی که فعالیت فکری ایشان زیاد بوده ولی از نظر فیزیکی ضعیف هستند، بیشتر مشاهده می‌شود. فسفوریک اسیدوم. ضعف شدید عصبی، عدم توانایی برای جمعآوری دو فکر با هم، مشکل برای یافتن کلمات درست برای اظهار نظر به طرز صحیح. خاطره ی روزانه تقریبا به صورت کامل ناپدید می شود، زعف شدیدتر در صبحها همراه با بی احساسی، سردرد شدید با این احساس که وزنه سنگینی روی فرق سر شخص گذاشته شده است و هم همه در گوشها و عدم تحمل موسیقی. پیکریک اسیدوم. کوفتگی و درماندگی کامل همراه با از دست دادن اراده و حافظه، کوچکترین تلاش روحی باعث ایجاد سردرد و دردی در طول ستون فقرات می شود و سردرد محصلین، استادان و افراد پرکار که دارای مسئولیتهای سنگین هستند. پلومبوم ناتوانی در پیدا کردن کلمات مناسب برای توضیح دادن، کرختی فکری تدریجی، از دست دادن حافظه، نگرانی و استراب، انقباز اسپاسمودیگ مری، و گاهی اوقات تنشجات کمابیش شکل اسپییا غمگینی و کوفتگی، بیاحساسی هیچ چیز مورد توجه شخص قرار نمی‌گیرد و او را سرگرم نمی‌سازد، میل به تنها بودن، تحریک علیه دیگران و حتی علیه خود، شخص به راحتی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد، از طریق تکسیلابی ها پاسخ می‌دهد و به محض آنکه شب فرا می رسد دوچار استراب می‌شود. احساس توخالی بودن شکم، عدم تحمل نورهای انعکاسی و اجسام درخشان، مشاهده لکه های سیاه و زیگزاک های نورانی در برابر چشم، حساسیت به صدا همراه با همهمه و سود کشیدن گوشها و درد در منطقه کمری خاجی.